اللهم اكرماتك و اشهد علم اجمالی بود و اعج شد موافقت استاد این سوال و اصول و از به سر علم الهشمالی دو بحثه اساسی هست یکی در مقام تنجید تکلیف به علم اجمالی و سبوت تکلیف به علم اجمالی یکی هم در مقام انتصاب، این که امتصال اجمالی جای انتصاب تفسیهی میچینه یا رتوه داره یا نداره این خصوصیاتی که به اصطلاح مربوط به خصوصیات مرام امتصال هنچه که مباری کلمات استاد بخوندیم و توضیحی داده شد و طبعا مرگ ماستا اون بخش دهمون رو که مربوط به امتصال باشه در اینجا آورده مخصرن است. خیلی مخصرنه و بعد در باب اشتغال متعرض میشه اصولا بناشون به این بوده این چیزی نبود که در کتب اصولی سابقه باشه بنابراین به این شد که بحث تنگیز علم اجمالی در محل سبوت تحلیل توی این بحث قدر بیارن مقام امتصاد تو اصول عملی اشتغالی چون دو جا متعرض علم اجمالی شدن یکی همین بحث قدر که الان ما درش هستیم یکی از تنگیهات قدر وقت علم اجمالی است و یکی چند در بحث امتصال و شم تو که وصول در عملی بعد از برائت اشتغال در اونجا به اصطلاح متعرض بشه البته معلومه اصال و حقه معلومه این اعتیاد و توان هر دو رو اینجا آوردن اما تفسیر موارد امتصال رو گذاشتن به قسه برائت اشتغال در مبحث اصول عملی یعنی بحث مقدار به اصطلاح معروف از نظر نظام علمی مقداری که شده تشریح شده تا این شده در خلال خود ده و اوچند در معامه سبوت تطریق که مقام اول به تحبیر مرموست استاد. از اون نقطه اساسی که در علم اجمالی هست اولیت نکاتش فرامان تر اما باید این نقطه که الان اینجا محل کلام ماست آیا اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی جاری میشن یعنی اگر جاری نشود منجزه اگر جاری شود منجز نیست به عبارت دیگه مثلا اگر یقین داره که از این دو اینا توشی قطعه خون مختار تشخیص میبین اصول تشکیزی در بانه نفی استثاب این یکم پاک بودون یکم پاک آیا استثاب تهارت درشون جاری میشه یا نمیشه و کداری اگر حالت سابقه معلوم نباشه دوتای اینا آباشه می یکیش نجست شده از ساعت یا دو قطعه پنیره می دونیم یکیش با انطعه مئیت با قول خودشون با پنیر مایه مئیت از ساعت سطحاره دو گوشت از بازار خریدیم می دونیم از ساعت سوق مسلم یعنی آیا نیچه من اصلاف مسلم جاری کنیم با علم اجمالی ما بینید که یکی میترسدن پس مراد ما از تنجیب علم اجمالی اینه تو مقام صعود تکیف. ما اگر علم اجمالی داشتیم آیا اصول تقسیطی در دو طرف جاری میشه؟ همچنین اگر من یقین یعنی دارم نظری کردم مسلم جدود از این مثال تو دفتر خودم نوشم نظری کردم نمیدونم نظر یا این سلات من تون ن روشن نیست که صدره نرشتم یا صلاح درست من علم به وجود دارم و اهداقم ما، همان نکه نبیدونم صدقه هست یا صلاح آیا میشه اصالات البراه اجاری بشه؟ اصالات البراه اتا انوجوب صدره؟ اصالات البراه اتا انوجوب صلاح؟ آیا جاری میشه یا نه؟ از کردم مجموعه احتمالاتی در اینجا هست حتی بین اصال خود ما سه تاست یکی اینکه اساس دراوه در هر دو جاری میشه استصحاب در هر دو جاری میشه سوق مسلم در هر دو جاری میشه که از اخرین امثال مرحوم مجدسی در کتاب اولی این تفصیل دوم اینکه نه در یکی جاری میشه در تو یکی میشه اساس سوق مسلم جاری کردی این یکی پاک حلاله تذکیه شده اون یکی دیگه نه در اصل رنگ سوم در هر دو میشه چطورای به اصطلاح حالا ما به این لغت خیلی واضح صحبت کردیم اون آیه‌ای که گفتن هر دو نمیشه اسمش وکام عضو به قطعیه اون آیه‌ای که گفته نه در هر دو میشه یا مثلا جواز مخالفت قطعیه اینجوری هم میشه تعبیر کرد ما بجای اون تعبیرات این تعبیر رو پیش کشیدیم آیا اصول تاریخی یعنی اون اصولی که منافیه مورد از اصول تاریخی اصولی که منافی با اون علم اجمالی ما آیا در هر دو طرف یا در یک طرف یا در ایچ طرف جاوی میشن یا نمیشه؟ این خلاصه بحث در مقام تنجید آیا این علم اجمالی منجز هست یعنی اصول در هر دو جاوی نمیشه یا در یکی داره هست چون تنجیدشون بعدها یعنی این اصل مطلب بعدها این بقای سو اصول مترخیتر ما یه مقداری باز بیشتر بقید اونها که دکتر شد و بقید متعارف و فیلمتر و خشبات خودش این بحث و محرف که پرد رهی نه عقل و نه عقل مثلا عقل میگه نمیشه ارتکاف کرد اما روایات میگه میشه این از یه بحثی که فیش آمد بحثی شد بگیم که مثلا عقل میگه شای مداره شما میتونی بگیم از آسان و بلایه در این یکی درونی یا عقل نگه نمیشه چون علم داری نمیشه اما شارع گفته هستا تعرفت حرام منه به اینه پس میشیم چون به اینه که مشخص نشد یا به احسش عقل یه اشکال نداره و که نقل یه اشکال داره بقید فرموی این بحث این طوری هم مطرح شد که ببین، به جای عقل باهی گفتن مقام ثبوت به جای نقل هم گفتن مقام اثبات این هم یک بحث دیگری که بعدها مطرح شده که علم اجمالی که مقام ثبوت و علم اجمالی توی مقام اسواق انشاءالا فکر. باشه بحث دیگری باز یعنی در همین زمان هم باز مثل سال اخیر در و اصول ما مطلب شده و اون که آیا علم اجمالی اقتضا داره برای تنجیز اون بحث یا علت تامن اگر گفتن اقتضا یعنی علم اجمالی مختلفی که منجز باشه و اصول جاری نشه لکن امکان داره شارح جلوش بگیره، امکان داره قانون گذار جلو تنزیلش بیاد علت تام نه نهادیر امکان نداره اگر روایاتی هم طرح مثلا آمد که ظاهرش اینه که علم اجمالی منجز نیست و تبدیل بشه امکان نداره امکان به است برای اینکه لذا اونجایی که یعنی امکان داره منفع شرعی اسمش بهشان اقتضا اونجایی که گفتن امکان نداره اسمشان این لفظ این اصطلاحات رو من توبیه ارز بکنن که محور بحث در کلمات متاخیر قبل از او در بحث تحدیر محل نزا رو خدمتون ارزم کما این که محتضای بادر ما حوثون پرش شد اول باز خود کلمه ایم ایجمالی شرق داده بشه که مراد از آیان این علم اجمالی این اجمال کجای علمه یعنی چه علم اجمالی سابقاً هم به یه از کردم علم اجمالی در اصطلاح به اجمال به این معناه که الهام هست یعنی ما علم ما باز نیست حالا در مبارس زن انشاءالله تعالی متعرض خواهرم شد کلمه زن خودش زیره خود کلمه زن در اصل عرب به معنی به معنی کتاهیه به معنی کمی این اصطلاحش این یه چیزی که زیغ داشته زیغی که در ادراک پیدا میشه از اون به تغییر به زن میکنن منشه زیغه ادراکی هم سابقا توضیح دادیم یا به خاطر واضح نبودن صورت این نوع یا به خاطر واضح نبودن مدرک و مبناس یعنی ممکن انسان ایم داشت اما وقتی از علم اصطلاح از منطره ی اما وقتی از زدگی بکرند، دلیل واضح نداره این امکان زیره. زیر همیشه به ادراک بر نمیگرده زیر دنای ادراک که اصطلاح هم برهان یا استدلال میگی، به اون هم بر میاده. روشن هم شاید در قرآن کریم تی از ماورا زن این معنای دوم باشه نه اون معنای من تی. از در ازمان اینهم ایلاعونون یعنی جاهلیه اینایی این که میگن وجد نه نا آباء ناله ها این ونه. یعنی این مدرک نداره،, زیر بنا نداره. ها نداره. خدا تو بارها نکام تو کنتم صادری، بارها ندارن. ما انزل الله ها من سلطان، سلطان نداره. وقتی انسان سلطان نداشت، او ادراکش حد باشه. بوده. مثل جاهقی ها مثلا که جاه در جهله، ولی ممکن است حد درسر باشه. اونجا ولاد در ادی از, از آیات مراد از زن زن اصطلاحی نیست اونی که زیر بنا نده وقت گایی باید ممکنه علم اجمالی به این معنا باشه خود علم یک نوع اجمال داره خود علم نو نوع ابهام داره این اگه باشید مکمه شکن زن ندهی؟ باید فرقی با زن نده علم اجمالی گایی آقای در برد اصطلاحات آمده مثلا تصور این میشه مثل این که انسان می داند یک چیزی در وسط هست و این در رابطه با دو طرفه این رانم در بعضی کلمات این تشریف علم اجمالی کرده مثل مسئله تخیر ما می واجبی هست نیمونیم الان این واجب واقعا ماده سه چیزه دو چیزه مثل خصال کفاره این هم مثل ایشون گفت اجمالی شبیه تخیر ده. شبیه اینسان رو من توضیح ارزمیم بازده. گاهی را از علم اجمالی اصطلاح هم اون علمی که انسان در اثر گذشت زمان اون لایه‌های های رسوب فکری خودش فرانسان بر اثر گذشت زمان هرچی معلومات یاد میگوه اینها یک لایه‌هایی در ذهن انسان رسوب میکنه وانوان لایه های رسوب فکری در انسان پیدا میشه که تردیجا تشکیل فرهنگ میده تشکیل بسر فرسان که یک از نوع آزاب و حراب اجتماعی میده اطلاع در غرف اجتماعی کجا سوار ماشین بشه کجا پیاده بشه این تدریجن در ذهن انسان تیدا بشه گاهی آخوی یعنی علم اجمالی مرادشون اینه که گاهی با بازم هرزش تردیر هر میکنم به علم اتفاضی گاهی ازش شدیر میکنم به علمی که اتفاض پیش نداریم آن در این روانکان جدید بیشتر از همین زمیر ناآغا یا لاشعور یا زمیر باطن زمیر ناآغا مراد از علم اجمالی اینه وقت در حقا این علم علم تفسیلی که تودش التفاظ داره اونی تودش ترجع داره اونو میگن علم تفسیلی نسید که الان من ترجع دارم چی بکنم اما در این حالی که توجه به صحبات قدم دارم درها برابر این معلومات در باطن انسان هست در قلب انسان در فکر انسان در وجود انسان در مرکز احساسی عصبی غیر اضالت نمکنه شرمونجه این رو به اصطلاح علم تفسیری اونی که بهش اتفاد داری و علم اجمالی اونی که به اصطلاح در ارتکاد ما هست توی بحث تبادر علم اجمالی مرادشون اینه تو بحث تبادر تعلامات که نمیدونم علم ما به لغت اجمالی است بعد که چون عملی تبادر رو انجام بدیم تبادر اصلا یه نوع تحلیل عقلانی است از لغت و ظاهر لغت در شامعه ما خب صحبت می‌کنیم به فاسی به عربی به عرض وام که از صحبت میکنیم این صحبت یه افتکازاته لغت موقع به جای این ارتکازات، بخیر کلمه انتفاق پیدا کنیم این اسمش علم تفسیریه مثلا لحظه آب دقیقا در زبان فارسی در مقابل چیه؟ لفظ نام در مقابل چی؟ این میشه علم تفسیری. پس اون تو بحث تبادل که میگم به اصالت تبادل علامت بز، علامت بز اون تبادل حقیقتش اینه ما با یک مقدار از معلومات اجمالیمون مندر میبینیم تا از او یک مطلب تفسیری در میاریم. با مجموعه شواهدی که ما با افتقاضات خودمون داریم آب در فارسی میبینیم مثلا نان در پارسیه کتاب در پارسیه در پارسیه پس یه اجمالی و تفسیری اینه که این توی برش توازار از ما در برش توازار کلالای رو در مقابل سهت سر و سهت هم لوحه کلال رو اینجور چیزا سهت استفام و سهت تخصیل این سهت در خود در کفایی اشتاقی متعارف نمونه در سهت تخصیم در مقابل مجموعه از این امور در این درست نیست تبادر یه مجموعه ای نیاز تواور یک مجموعه یک نوع عمل ذهنی تحلیل ذهنی با قول وزه ما آنالیز ذهنی ما می معلومات رو با همشه چند میکنیم کنیم که میکنیم به این نتیجه می رسیم با مجموعه این شواهد با سه حدد و س هم چرا دو سرد و سرد استفاع و الاخره. به این نتیجه میتونیم که آب در زبان فارسی که ما خودمون و ارتکازمون به کار میبردیم حدودش اینه این نوعی علم تفصیلی در مقابل علم اجمالی هست اجمال و تفصیل به اینه به ارتکاز و ارتفاد این، اینا هیچ کدام مراد در اینجا نیست مراد آزان از علم اجمالی در اینجا هیچ کدام از این معانی نیست مراده آیان از علم اجمالی در این بحث اصول در حیثت حبارت از این است که انسان علم به تکلیف داشته باشه این واجب کهیری همینی در از وقت دانیان رو داشته شده. علم به تکلیف حیدام کنه لکن متعلق علم اجمال داره لذا کسانی که به شدت قائل هستن به علیت تامه علم اجمالی اون نقطه شه این میدونن روشن بشه برسه مثل مرمو آزیا هستن مثل مرمو آزیا که علم اجمالی و علت تام بمیدونه اصلا امکان اجرا و اصول تخشیصی درش نمیدینه میگه در این که اجمال بیهی علم اجمالی با علم تخصیلی یکی ایش رو اونجا یعنی داره یه تکری آب خون افتاد این اینجا میعنی داره یه تکری خون افتاد در علمش بیهیم که تحریفی به اون متوجه شده به اشتنب نجس در این شب نهیم همین که یک قطعه خون خود بذارد این قطعاً اشتنب نجس میاد در علم تفصیلی و در علم اجمالی در هر دو اون علمش هیچ مشکل نداره اون علمش تفصیلیه روشن اونی که مشکل داره منشه اشتغال شده این که نمیدونیم متعلق علم این ذره یا اون ذره؟ در نایه علم و علم به تحریفی چوبه نداریم و دیمه یک قطعه آخون اختون خب پکن دویم اشتر من نگه سامن در که نداریم که این علم تفصیلیه این علم اجمالی نیست. اونی که منشعه اجماله نمیدونیم اون قطعه توی این زرف دستراسی یا دست شفی اونی که منشعه شده که بگیم علم اجمالی با تفصیل فهم نه همین نوعه هست من آن بعد بگ چون متعلق تکلیف واضح نیست آیا به این اناع کرده یا به اون اناع میگن همین مقدار که متعلق تکلیف واضح نباشه اصول ترجیحی جادی میشه اونا میگن نه سر مقلب روشه اون که منشع هست در ما نحنفی اینشالا میذارم کاملا بار متعلق تکلیف ابهام داره خود تکلیف که ابهام نداره در اون که اجماع نیست من یقین دارم یه قطعه خون در اینجا جا افتاد کنیم با یقین من با دیدن این که من قطعه خونی در اصابه کرد قطعاً دیدم تکریب آمد یه جب الاشتنابان اشتنه این اشتنه که آمد کی دارش من شعره که مدرم که این نور کلام نمیدار این اشتنه بی این انا آخر داره اون انا اونی که محل ابحام و محل اشکال اینه این مقدار محل اشکال خوبه کنی؟ بحث اینه این مقدار محل اشکار موجب بشه که اصول فقهی جاری بشه اونا میگن این مقدار ابهام و اشکار این تنزیه علم رو بر نمی این بنایه علم و تکلیف ضرر نمیزنه. خوب بخاطر بکنید شما خون رو دیدین تا خون دیگه جریانری تمامه این مقدار ابهام شما که این برای یا هم اون به تکلیف ضرر نمیده به تنجیز علم ضرر نمیده اون میگه میگن نه همین مقدار یا به عبارت دیگر اون جهل تفسیری شما داریم علم داریم جهل تفسیری در انتباه داریم این مقدار جهل تفسیری شما در انتباه بینیدن از این آیا همین مقدار کافیست که اصلت هر تجاری بشه؟ یا نه این مقدار کافی نیست اون آهانی که میگن کافی حالا یک عزه گفتن اقلق یک عزه گفتن نقلق حالا اون محل کلا اون اختزائلیت اینجا میگن پس خوب محل وقت رو چند بشه اون آهانی که میگن علم اجمالی منجزه تصریرشون اینه علم اجمالی به این اجمالی است متعلق علم معلوم و الله خود علم که اجمال من داده قطعی توی که بحث نداره فرق این فرقه نمی این با علمی تفصیلیش نمیکنه و این غیر از مسئله حجوب تخلیلیست با اون اشتباه نشه چون در وجوب تخلیلی که سابقاً هم بحثش مفصل گذاشت تصویرهای مختلفی آقایان دارن ما از کل حقیقت بحث حجوب تخلیلی اونجا اصولاً تکلیف به جامع خورده لیکن جامع دو جوره یک جامع عقلی داریم یک جامع شرعی جامع عقلی مثل یک عقلی معالمم بردن عالم قابل انتباه جامع شرعی مثلا یک خسال کتباره تکیی خوده به جامع بین این ستا به،, به عبارت اخراب اگر اون جامع رو شما در افراد غیر محدود در نظر بگیرید شه عقلی اگر جامع رو در افراد معین در نظر بگیرم شه شرعی اون فرموی اون تخیی و از کردیم محمود صاحب عبدالله صاحب نفسه تخییر شرعی رو بین و تخییر عقلی برگردن این واضح نیست این بحث سابقه تو تو هم توجیه شده توجیه ها هست من این خواهیم جوازه بسته واجه رو چون بحث هاش بذاشه در محلا صحیح در مقام اینه این غیر از علم اجمالی است اونجا به یک جامعه بین اطراف معین جامعه بین مثلا پس اون جامع بسید نه هر کیفری شملاق دادن مثلا که گوشش بزنن نه هر کیفری نیست یک کیفر معینی مثلا خسال تفاره سوم و صدقه هست افقه یک کیفر معینی رو اگر جامعه بین افراد معین باشه میشه تخییر شریف بین افراد غیر معین باشیم این شد تخییر حاله این جامعه بین افراد غیر معین این فرقیم و لذا ارجاع تخیر شرگم یعنی به تخیر عقلی به نظر ما با استقاضات قانونی ما نمیخوره مناسب با استقاضات قانونی نیست درد میتوانید پس زناوری علم اجمالی با مسئله واجب تخیری هم فرق بیه میداره فوق العاده تا اینجا به نظر من روشن شد و لذا مثل مرموم آزیا که قائل به امیدیت این اینجور برای تنظیر بکنید مثل اینکه شما از صبح زود که همه هوا خیلی روشن نشده یک خردی از دور میاد شما تشخیص میزنید زعود خودتون که این زیره، در میکنید اما خب معلوم حیکلی هست دقیق نه میگه اگر این فرد نزدیک آمد یا هوا روشن شد معلوم تو زیده. این معلومه اول شما با دوم شما ترمی نکرده فرکه کنید ایمه شد دو تا نشده هم به قطعه یه علم اجمالی همین یه چیزی داریم اون شما شما داریم میبینید قطعه خونقصا فقط بر اثر این ابهام که پیدا شده این قطره در این انا یا در اون انا من ما نشالله تاله نقطه اشتگیری زرید داریم نقطه الان اینجا حرص میکنن چون این آنشون نایه بودن ببینید ما این بحث و مصطوفات کراراً محضر کردیم دیگه جاشان نیست ما معتقدیم اصول عملی به طور کلی یه نوع ابداع نفس به خلاف امارات امارات کاشف از واقعاً طریقاً با واقع یعنی به عبارت همیشگی خودمنده در امارات شما تعامل با حد واقع داریم در اصول عملی تعاملتون با حد دل علمه که از نکات، این تعبیر نهیم در کلمات رو سنو که دعا ببنده اینه چرارا توضیح بودن یه لفت تعامل شما با حد واقعیه، واقعه یه لفت تعامل شما با حد علم، اصول عملی کلن تعامل با حد دل علمه و لذا همیشه از کردن اون نکته فنی اگر میخواید نیاز بگیرید در این طور اصل عملی میخواد جاری بشه باید اینطوری حساب اصاب بکنیم حد علم شما چیه و مطلوب شما چیه؟ شما واقع را نمیتونی بشتارد اصلا اصل عملی فرض اولیش نه که راه شما به واقع مسدوده فرصوی مثلا همین با مثال مثال زیاد کل اصول عملی هم میتون. شما رفتیم گوش از احسان خریدین چک می‌کنین تذکیه شده یا تذکیه نشده؟ دقیق بکنین شارع میاد چی میگه میگه از احسان مسلمان خریدی صوب مسلمان، مسلمان مصرف مصبت بکنین شانده. درست ببینید حد علم شما چیه؟ حد علم شما به حقوع تسکیه نیست چونتون در حقوع تسکیه چرا تیاریم حد علم شما گوش که در واضح باز. این حد علم شما حد محدوع شما چیه؟ محدوع به شما چیه؟ تسکیه شده یا نبینید؟ شما تسکیه میخوایی؟ هدل علم شما از دست مسلمان گرفتید خب طبیعتاn توازن با هم ندável که مسلمان تسکیهی هم نشده باشه تعباس که میاد میگه آقا شما از دست مسلمان گرفید این مذکر. این میشه اصل عملی است این اصل عملی منوزیده شما مادام از سوق مسلمان گرفتین از دست مسلمان گرفید این به اصطلاح مذکاست زید تا دو ساعت قبل تا دیشم تلیشم زنده بود حالا شک میکنید الان شک میکنید زنده است چیزی گفته خود کرد شما حدول میتونید چی خوب دقیقه حدول علمتون که زید الان زنده است حدول علمش زندی پیشدنده بود خب ممکنه الان فوق علو باشه حتی علم تفصیلی و اله علم اجمالی که ما منقرض عملند الان اینجا اجازه بدید اجازه همین بخم بحث حدول علم در علم علمشون تفصیلی هستند روشن شد شما استصحاب میکنید یعنی چه استصحاب میکنید اون وجودی که پیش دیدین اون رو توسعه میدی الان هست پس شما میاید با حدول علمتون تعامل میکنید نه که الان زید واقعا زنده از و مرده شما نمیدونیم در اصول عملی این قائده رو به طور کلی داشته باشیم همیشه اجرا اصول عملی برای رو روشن رو میکنه یک یعنی حد دول داریم یک یعنی حد دول داریم حد دول و در اصول عملی این تنظیل دو جوره یه که من توضیح دونم یک لحظه تنظیل به لحاظ موضوعه یه لحظه تنظیل به لحاظ حکمه اگر تنزیل به لحاظ موضوع شد میشه اصل محرز اگر به لحاظ حکم شد میشه اصل غیر محرز ما این راه برای تشریف اصل محرز و غیر محرزی محرز این قرار دادیم تو همین قاعده تجاوز شما در حال سجود شک میکنیم رکوع رو انجام داریم نه خوب دقیق بکنیم. دو جور ممکنه شارع تعدد بکنه. اگر گفت امرتی سلاسه نمازت تام بکن کامره شد اگر امر به این اصل غیر تنظیمی یعنی چی اصل غیر تنظیمی شار الان شما رو نگاه میکنه کار نداره شما رکوو کردین میگه نماز تامو اما اگر گفت بلا قدرک کن رکو انجام بده رواتم داره بلا قدرک اگر گفت بلا قدرک کن این اصل موقسی اصل تنظیمی ضابطه یه دفعه میگه تو رکو انجام دادن تعبده اینش اصل یه با میگه تو نمازت انجام بده تو همون مثال گوش که قدرم شما از امام سوال میگه آه من گوشت از بازار خیلیم امام میگه بخور اگه گفت فرمونت بخور این اصل غیر محرز اگر فرمونت از دست مسلمان گرفتی بینیم از دست مسلمان یعنی چیه یه موزکات میگه تذکیه این میشه تو موقع ما زوابط روشنی در این جهت که بشناسیم اصل محرز ی خوب دقت ما تو علم اجمالی چی میخوایم بگیم خوب دقت بکنم من دیدم یک قطعه از خون در اینجا افتاد تا دیدم یک قطره خون افتاد خمی در علم پیدا کرد تکیفی آمد به اشتن اشتر الان ملاقات دم آمد ما در علم اجمالی میخوایم بگیم کل و واحدن ملاقات دم این یک معنا میشه شبیه استفهام مثلا این انا دیروز نجس بود الان نجس. آیا ما تو علم اجمالی اینه مخیرم بگیم یا تو علم اجمالی بگیم وجوب اجتناب آمد خوب دقت این کلو واحده یه جبال اجتناب بود خوشن آیا ما در علم اجمالی بگیم کل واحده ملاقه نجست مثلی که دیروز این انا نجس بود امروز روز هم بگیم یا کل کلو واحده یکی بول اشتنابان حکم رو میاریم تنزیری که میکنیم میگیم تو که دیدی قطعه خون افتاد تا دیدی قطعه خون افتاد و چون در دو طرف یکی بول کل کلو واحده یکی بول اشتنابان نمیدونم این انایت فرمودی یه دفعه به لحاظ تصرف در موضوعه آهایان بناشوند اینه که ما در علم اجمالی کل واردن یجب الاشنا نه کل وارد الملاقه در اگر بگیم کل وارد ملاقاتن یه نوع مجاز مثل جردمیزا میشه و الا کل واردن یجب الاشنا با این تقریر این شبهه‌ای که در معروف شاطو ذهن شما حالا آمده باشه و خب سوال اگر این انا مثلا دیروز نجس بود امروز اسصحاب نجاست کرد دست بکید داریم تو اون آب انا دستتون نجس میشه اما اگر این انا و این انا بود علم اجمالی پیدا کردیم یکیشون ملاقی درمه دست تو یکیشون داریم میگن دستتون نجس نمیشه خب چه فرمه کنه ملاقی احد و بعض الاطراف رو منجس نمیشه مثلا نجست نمیزونن اما در مورد استساق میگونن هر دام اصله. چه فرمه کنه مثلا سوال این دیگری از نجس بود ملاقه با بود امروز دست نجس کرد. دست نجس کرد. این داریم یکی از این دو اینا ملاقه با دستش درس به زنی بیکیشو نجس نیسته. چرا؟ چون اونجا اصل انجام اصل. اونجا میگه دیروز نجس بود حالا نجس نیست. اونجا میگه یکی از داریم. آو شدیم این با دارن. اون مطلب قاضی. جوابش به نظر من کاملا براتون واضح شد در استثاب تصرف در موضوعه در استثاب میگه دیروز این نجه بود امروز نجته استثاب مفادشی من در علم اجمالی شما نمیگیم این ملاقیه دم ممیگیم یکی بل اجتنابه با یکی بل اجتنابه هم تنظیف ثابت نمیشه کل می یکی بل اجتنابه هم لیکن با یکی بل اجتنابه هم تنجیس ملاقی تاوز اون که باش ملاقات میکنه باید دقیق نقطه ای پس سوی ما در علم اجمالی دنبال چی هستیم اولا علم اجمالی دارتون تفسیر رو چند شد سانیان آیا ما در علم اجمالی تصرف در موضوع میخوایم بکنیم بگیم و واحده ملاقل نگه یا کل واحده می یکی بل اجتنابه هم تصرافه در حکم خیلی بکنه اگر گفتیم تصرافه در موضوع شد مثل استثاب میشه از در اگر گفتیم تصرافه در حکم شد در موضوع تصرافه در موضوع شد و این شایلال تعالی خلال بحثایی هست یعنی معلوم شد تنجیز علم نجمان یعنی چی؟ اینایی که میان تنزیز علم اجمالی مثل محبوم شهر دیگران نظرشون رو تصرف در حکمه نه در موضوع اشتباه نه شهره حکمی. حکمی و لذا میگن علم اجمالی علت تامه برای تنزیزه با علم تفصیلی پرمون اون سر لولد ها سر و شهر شد تا ما من این توضیح کم باشیم اون نکته پنی اینه چرا؟ چون نقطه پنیش این حالا هم من مون استادم جباره بشوند در تندیز علم اجمالی ایشون اول یک شبهی مرسل کنم آن مراسل کنم بعد سرناس هر بین علم اجمالی و تفصیلی نیست من الان با این توضیحی که خدمت رو هر دادم کلمات ایشان و کلمات مثل مرمو آزی و دیگران کاملا روشنگ شد در برد البسی ایشون تفصیلشون اینه که تندیز تابع وصوله. و با علم اجمالی اصول و فقه صرف میکنه ما توضیحاتی سابقا عرض کردیم در سکی بگی وصول ما انقضاش صورت عرض کردیم ما در باب تکالیف اعتبارات قانونی اعتبارات قانونی مرحله ای داره به نام تنجز عرض کردم این قانونی مراحل مختلف داره از مثلا مرحله جعل بعد از مرحله جمع مرحله ابلاغ انزال به تعبیر قرآنی به عنوه رکن بی یا مرحله ارسال رسول به انزال کتب، مرحله بعدی مرحله تنجزه که وصول الالمخلق بغلق آیم. این مرحله تنجز از کل در تکالی تاقه انتقاش صورت اون انتقال صورت هم به تحبیل وصول بطریدان به انتقاش صورت دو جوره یکی کبرای که شورا تا این دو تا انقاش صورت نشه پنج جزء یعنی باید بجنه حرامه باید انتقاش صورت بشه این مایع خمر اون وقت میاد یجبول شما ما گرفتار یک کوبراس یک شورا کلام اینه خوب دقت بکنید کلام اینه که اگر ما از کردیم مباحثی که در اصول هست تماما حول همین مهوری سابقا در اول بحث قدر متعرض شده یه تکار نمیخواد بکنیم تمام مباحث اصول اگر خوب دقت بکنیم همین انتقاش صورت که <تصح> <تصح> اسمش خودجیت ما خودجیت رو به معنی همین انتقاش صورت گرفتیم. نه به معنی جرگ عمله چون به اون معنی گفته میشه. این حوضی های چند با یه تکار نمی کنه این انتقاش صورت خوب دقت بکنید از جهات مختلف بررسی شده این انتقاش صورت مثلا مدرک این انتقاش صورت شما چیه شما مثلا میگه مثلا سیگار کشیدن داره مدرک این چیه از روایات در آوردی میگی آقا از او متشریه ارتکاز متشریه میاد اصول بحث ارتکاز متشریه میشه خود جهتی ما به بین الله میشه کافی در حجیت از در تنجوز نه نه شما خوب دقیقت کنیم کل عباس و اصول شما از تجاه میگه مطلب واجبه جواب چون که خداوند نوارد سیغه امر فرمون پروت دو ها امر فرمون امر روز وجود میکنه. سوال آیا امر دارد وجود میکنه یا نیمیکنیم یعنی مخاطر از این مطلب در بیاره که آیا از وجود امر میتونه انتخاش صورت وجود در ذهن شما بشه یا نه؟ پس اگر خوب دقیقت تمام مباحث و اصول اینه میان این صورت ذهنی که برای شما در تکلیف آمده البته اساسا در اصول بناس به انتخاش صورت در کبراه باشه دایی هم صغراه صغراه هستو به صدارشونی هم قواعد فیلم مثلا اساسش در کبراه این انتقاش صورت سو آمدن از زوایای مختلف در کرده مثلا دایی صورت قطعی صورت علمی در صورت زنی آیا زن کافی هست این یک برست گاهی اون صورتی که در شما هست متعلقش شوشنه گاهی متعلقش شوشن نیست اگر متعلق شوشن باشه علم تصفیلی نباشه علم اجمالی این نزبه هست این چی میاد میگه میگه درست متعلق اجمال داره لطبین چون خود اصل علم و حق اجمال نداره همین مقدار کافیست و تنجیست پس بحث علم اجمالی کاملا نقطه فنی و اصولیش روشن شد آیا صورتی که از علم اجمالی پیدا میشه کافی برای تنجذ و حجیه این چی میگه میگه برای چه جهت حجیه یعنی کل و واحدن ملاقات نگفت کافی نیست اما کل و واحده نیازی به کافیه درست؟ این خلاصه بحثه ما در علم اجمالی و در این حال هم نقطه فنی دلیلی که من اون استاد به تقریب خود ما اینشادا رو شنشدار در کلام تکنم بزنم و الله علیه و